بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الاطق بفضل و اون خدا رسدین به آخرین کتاب از کتاب ارزشمند مختصر عبی شجا کتاب الاطق کتاب آزاد کردن ویسح الاطق آزاد کردن برده است چون یکی از مسائل که قدیم بود اسلام اومدو بود برده بود برده داری بود و اسلام راه زیادی هم برای آزاد کردنش آورد اونا رو مرتبط با عبادات کرد که مؤمنین صد درصد گیر میکنند مسائلی رو یعنی کفاره بسیاری از خطاها قرار داشت داد در به این یوری بگم در این مختصر البته اشاره نشده اینجا فقط همون لب مطالبو گفته توزیده در انوای حرابد و این مسائلو کتاب اتقی کتاب آزاد کردن ویسح الاطق من کل مالکن جائز تصرفی فی ملکی میگه صحیح هست آزاد کردن از هر مالکی که جائز تصرف هست منظور بالغ و آقل و دانه هست فی ملکی بس جائز تصرف هست در ملک خودش هر کسی که جائز و تصرف هست بچه نیست دیوانه نیست محجور نیست میتونه آزاد کنه ویا قاو ال... بسریح الاتقی و الکنایتی معنیتی میگه این اتق واقع میشه با الفاظ سریح اتق که اعتقتو کن در عربی دیگه آزاد کردم تو را این دیگه سریحه میگه واقعی میشه آزاد کردن با الفاظ سریح آزاد کردن سریح اتق و بالکنایایت و با الفاظ کنایش اگر با الفاظ کنایه بود الفاظ سریح اونیه که فقط دلالت بر آزاد کردن میکنه لفظ سریح اونیه که هم دلالت بار آزاد کردن میکنه هم دلالت بر معانی دیگر. مانند این گفت لا ملکلی علیک. ملکیتی برای من بر تو این کنایه است. اینجا اگه نیتش آزاد کردن بوده آزاد میشه. و ایده اعتق بعب و زمانی که آزاد کرد قسمتی از برده را مانند این که گفت دست تو آزاد کردن. یا گفت یک چاره تو آزاد است اعتق عليه جمیعه بر مالک تمام این برده آزاد میشه به حسابش پس اگر گفت نصفت یا ربعت یا تو آزاد کردم همش آزاد میشه اون غلام و اعتق له فی و هو و اگر آزاد کرد سهمیه‌ای را که در برده ای داشت مثلا یک دومش مال شخصی بود شرک خودش رو سهم خودش رو آزاد کرد و هو موسرو و این آزاد کننده موسیر بود منظور از موسیر اینجا یعنی به اندازه آزاد کردن مانده غلام مال داشت نصف برده مال خودش بوده آزادش کرده نصفش مال کسی دیگر هست فرزند قیمتش صد هزاره میگه اگر نصف خودش را آزاد کرد سهم خودش را آزاد کرد و هو موسرو و این آزاد کننده توانایی داشت توانایی به اندازه چقدر اینجا؟ به اندازه آزاد کردن نصف دیگرش پول داشت. سر العتقو الى باقی میگه اینجا چی میشه؟ آزاد شدن به باقی مانده اون غلام سرایت میکن. باقی ماندهش هم آزاد میشه اگر نصفشو آزاد کرد. یا یک چهارم سهمش بود آزادش کرد میگه باقی ماندهش هم آزاد میشه زمانیک شخص برای باقی پول داشت. از حساب همین آزاد میشه. و, كان عليه قیمت و نصیب و بر همین آزاد کننده هست قیمت نصیب اون شریکش پس اگر برده شریکی داشتند یکی که سهمشو آزاد کرد و موسر بود و توانایی داشت خلاص برده آزاد میشه و قیمت شریک سهمی شریکشو میپردازه و من ملک واحد من والده آم مولوده هی علیه و هر کس مالب شد پدر یا مادرش را یا فرزندی از خودش رو مالک شد، آزاد میشه به محض اینکه مالک شد، و آزاد میشه از حسابش فاصل الولاؤن، فاصل بعدی در رابطه باولا هست این دولا مثل نسبه مثلا فلانی فرزند فلانه یه نسب، این ارتباط ولی ولا بین آزاد کننده و آزاد چونده پیش میاد با آزاد کردن زمانی که شخصی شخصی رو آزاد کرد میگن این ولایش برای آزاد کننده هست ول ولا از حقوق ادق و آزاد کردن است شخصی که کسی رو آزاد کرد ولا پیش میاد این ولا مثل نسب زید که فرزند بکره با تولد نسب پیش اومده این با آزاد کردن این ولا مثل نسبه اینطور که نمیشه نسب و فروخ مثلا یکی بگه یا من نسب خود رو به تو میفروشم پول بهم بده فردا روز تو ازش ارث میبری این والا هم همین احکامات رو توضیح میده در مارد شون. ميجي والولا من حقوق الاتقي ولا از حقوق اتقو آزاد کردنست وحكموه حكم التعصيب اندى عدمه وحكم ولا حكم تعصيب اسببو دنست هندام ادمش يعني ولا حكم اسبب نسبو ميجي ري زمانيكي آزاد شده عصبه نسبی نداشت آزاد کننده در این صورت از راه ولا ارسیگر از کی؟ از آزاد شده پس ولا از حقوق اطقس و حکمش حکم تأثیب است هنگام نبودن عصبه نسبی شخصی اومده غلامی رو آزاد کرده اینو غلام فوت کرد. عصبه نداشت. فرزند نداشت. پسر نداشت. برادر نداشت. پدر نداشت. اینجا کی از عصبه نداشت؟ اینجا کی ازش عرض میبره؟ آزاد کنده. پس میگه حکمش خکم عصبه هست ولی رو و عصبه به هست انگام نبودش وینتقل الولاء من المعتق الى ذکور من عصابته و منتقل میشه ولا از آزاد کننده به اصبه های مردش چطوری؟ شخص غلام آزاد شده فوت کرده کسی رو نداره ارث ببره خب مسللک گفتیم از راه ولا آزاد کننده ازش ارس میبره. حالا خود آزاد کننده فوت کرده. میگه این ولا منتقل میشه به اصابه های مذکرش. پسرش زنده هست. از این آزاد شدهی ای که الان مرده پسر آزاد کننده ارس میبره. پس و منتقل میشه ولا از آزاد کننده به اسبه های مذکرش و ترتیب العصباتی فی الولاء که ترتیبه هم فی الارث و ترتیب اسبه ها در ولا مانند ترتیبشون در ارث هست <تصفيق> چطوری؟ ببینید ما در بحث ارث بین اسبه ها اولویت بندی داریم اصلا یکی فوت کرده بود پسر داشت یکی فوت کرده بود پسر داشت یا برادر داشت پسر داشت برادر داشت عمو داشت خب اینجا اولویت بندیه در ارث بردن پسر وجود داشت پسر ارثو میبره نداشت برادر میبره نداشت امو میبره اونجا هم ترتیب عصبات در والا مانند ترتیبشون در ارث آزادکننده مرده پسر داره برادر داره همون ترتیبی که در ارث داشتن در اولویت اینجا هم دارن بس در اولویت همون ترتیبی رو که در ارث دارن اینجا دارن و لا یجوز و بیع الولائی و لا جائز نیست فروشه و و همچنین بخشیدنش بدیگران مانند نسل میتونی یکی بگه من نسل خودم رو میفروشم یا هبش میکنم ولا رحم رو هم نمیشه این کارو کرد. کرده فصل المدبر فصل بعدی در رابطه با مدبر هست مدبر اون است که شخص وش میگه بعد از مرگ من تو آزادی و من قال لعبده اذا متو فا انت خود هو مدبرون و هر کسی به برداش گفت زمانی که من مردم تو آزادی پس اون برده آزاد است چی؟ پس اون برده مدبر است هر کس به برداش گفت زمانی که من مردم تو آزادی اونو میگه مدبر یعتقو بعد وفاته من سلوثه این مدبر این مدبر بعد از وفات سیدش مالکش آزاد میشه از یک سوم مال یک سوام مال یعنی چی؟ یعنی شخص فوت کرد فقط همین یک برده رو داشت خب کلش آزاد نمیشه یک سومش آزاد میشه اما اگر دو میلیارد داشت قیمت عبد بود هزار کامل میشه چرا چون ما یک سووم دو میلیارد رو جمع میزنیم چقدر شد کمتر از اون یک سووم قیمت این شد آزاد میشه پس از یک سووم مال آزاد میشه نه از کل مال از رأس مال و یدی بله و ان او حال حیاتی و جائزه است که مدبر رو بفروشه در حالت زندگانش مدبرش کرده ولی نیازمند شد فروختش جایزه. و یا بطول تدبیروه با این فروختان هم تدبیرش دیگه باطل میشه مدبر بودنش باطل میشه و حکم مدبری تی حال حیات سید حکم العبدالقن و حکم مدبر در زمان زنده بودن سید حکم برده خالص است در بقیه احکامات میتونه اونو بفروشه هبه کنه و اون چیز رو کون مدبرم کسب میکنه قبل از موت سید مال سیده فصلون الكتابتو فصل بعدی در رابطه با کتابت هست والکتابتو مستحبه و کانه معموما مکتسبه نگه کتابت قرار داده کتابت مستحب هست زمانی که برده اونو طلب کرد. داره کتابت قرارداد کتابت مستحبه کتابت اینه که قرارداد بین غلام و صاحبش که غلام طلب میکنه من اینقدر مال به تو میدم منو آزاد کن و سیدش قبول میکنه خب این توضیحات بقیش که این مالو چطوری بده میان دارن میگه و مستحبه و مستحبتون اذا سآله العبد و كان معمون مکتسبن مقتصیبا قرارداد کتابت بین غلام و سید مستحب هست زمانی که طلب کرد اونو غلام و معمون بود منظور از معمون بود یعنی در آنچه که کسب کرد در اون مالی که کسب می کرد، امین بود در گناه اونو خرج نمیکرد کرد توانایی کار داشت آره دیگه اگه ضعیف باشه کاری نباشه نتونه در بیاره ولا تسيح إلا بمال معلوم مي كتابه صحيح نيست مگر بمال كم... معلوم مگر اینکه اون پولیکه سيد ازش ميگه معلوم باشه و يكون مؤجلا إلى أجل معلوم ومدت با دار باشه گرفتن اون پول و مدتش هم معلوم باشه أقله له نجمان كمترين مدتش دو دقست باشه همترین شده هم اقل دو قسط تق... دو باشه یعنی فرزن بگه آقا دو سال فرصت داری آخر هر سال اون پولت نصف شوید تو این سال بده نصف شد تو اون سال و هی من جهت سیدی لازمتون میگه این قرارداد از طرف سید است. نمیتونه فسخش کنه و کار بیاد بگه آقا قراردادو من فسخ میکنم و من جهت المکاتبی جایزه اما از سمت مکاتبه همون غلامی که قرار داده کتابت نوشته بهش میگن مکاتب اما از جهت مکاتب جایزی هست یعنی میتونه قرار داده کنه. فله فسخ کنه فلهو فسخو همتشا پس برای مکاتب است فسخ کردن این قرار داد هر وقت که خاص چون از جهت اون لازمی نیست جایزی هست و للمکاتبی التصرف ما فی في یدهی من المال. و برای مکاتب هست تصرف کردن آنچه که در دستش هست از مال اون مالی که در دست مکاتره حق تصرف داره باله حق تصرف داره خرید فروش هبه فلان حق تصرف داره و یجبه على ان یضع عنه من مال الكتابه ما يستعین به على ادای نجوم الكتابه. و واجب است بر سید بر مالک که قسمتی از مال کتابت رو بیندازد قرارداد کتابت دویست هزار بگه آقا من سی هزار فرزن از تو اندختم میگه و واجب است بر سید بر مالک که بیاندازد از مکاتب از مال کتابت مایست اینو بهی علا عدای نجوم کتابه آنچهرا که کمک بکند این مکاتب مکاتبو ادا کردن قسطهای کتابت قرار داد كتابت ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بس جديد يتكلم بكين كي مال يمال بر برون عدا كردن مال كتابت يملك كمك بكوني و آزادي حاصل بشي ولا يعتق إلا بأداء جميع المال ميغي آزاد نميشي مكاتب غلام مكاتب آزاد نميشي با باعداء كردن تمام مال، تمام مالوک رو کرد، خلاص، آزاد میشه. فصلون امهاتو الاولادی. فصل بعدی در نوع غلام دیگه ای رو معرفی میکنه. بعد از مدبر و بعد از مکاتب، ام ولد رو داره توضیح میده. میگه امهاتو الاولاد، امهاتو الاولاد دیگه کدوم هستند؟ ام ولد که هست؟ میگه و ایده اصحاب السیدو اماتهو. زمانی که هم همبستری کرد آمیزش داشت نزدیکی کرد سید با کنیزش فوضعت ما تبین فیه شیء من خلق آدمیا پس وضع حمل کرد اون کنیز آنچرا که مشخص بود که خلق آدمی داره آه یک تکه گوشی حتی ازش به دنیا اومد که به شکل خلق آدمی بود. حرام علیه بیعها و رهنها و اینجا حرام میشه بر این سید فروختن این کنیس رحم دادنش و بخشیدنش. وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوضع. جایز است برای سید تصرف کردن به چه چیزی؟ بکار گرفتن ازش و هم خابی با و مات السيد و زمانی که السید فوت کرد من رأس ماله قبل الدیون و الوسایه آزاد میشه این ام ولد از رأس مالش قبل از دین ها و قبل از وسید ها این آزاد میشه یعنی چی؟ یعنی اگر سید مرد و چیز دیگی جز این کنیزو نداشت که ام ولده خلاص و رو چیزی گیر نمیاد این آزاد میشه و ولدها من غیرهی بمنزلتها و فرزندی که این کنیس از کسی دیگر داشته بمنزلی همین کنیس هست یعنی به تبع این مادر اونها هم آزاد میشد با موت سید و فروششون و رهنشون و هبشون ممنوع است. و من اصابه امت غیرهی مکاحب مسئله دیگه نطرح میکنیم میگه هر کسی هم کرد شخصی دیگر را با نکاح هر کسی با کنیز شخصی دیگر نزیدی کرد هم کرد هم آمیزش داشت با نکاح با کنیز هم نمیدی کن بسیدی فرزندی که از این کنیزی مملوکه که مملوکش و به اما با کسی دیگر رفت و کرد به فکر می کرد مثلا کنیز خورش فرزند این آقایی که با شبه نزدیکی کرده آزاده هست و علیه قیمت کنیز سید و قیمت اینو به سید اون کنیز بده فرزند دو قیمت کجاری که چقدر هست قیمت شوه به اون صاحب اون کنیزی که از راه شبه باش نزدیک کرده و قیمت این فرزند رو بشه بده چون فرزند آزاد میشه وإن ملك الأمث المطلقة بعد ذلك بأجر مالك شد كميزة تلاقضاد شدرا بعد الزقن لم تصير أم ولد له بالوقع في المكاة نجي إن, و... إن كميز أم ولد نمي جردت با نزدیکی کردن از راه نکاح به چه شکل؟ یعنی بعد از اینکه نزدیکی کرد با نکاح شکلش اینه که اومد و ازدواج کرد با کنیز. زمانی که مملوک کسی دیگر بود اون کنیز. و با او حامزش داشت و ازش فرزندی آورد بعدا که همون جوری مملوک اون کنیز مال کسی دیگر بود تلاقش داد بعدن ها همین شخص اومد مالک اون کنیز حالا یا خریدش یا بخشیده شد به هر شکلی اونجا میگه این کنیز امه ولده اینا ها نمیگرده چون بچه رو که آورده ماله قبلا بوده و صارت امه ولد لما بالوقع به شبهتی احد آل حدر اما امه ولد میگرده اگر قبلا ها نزدیکی داشته با این کنیز از راه شبهه البته این طبق یکی از دو هست و این قول مرجوح هست اینکه که امه ولد میگرده با نزدیکی کردن شبهه این سخن مرگوه هست ارجش اینه که ام ولد نمیگردد. مگر اینکه دوباره باش نزدیکی داشته باشد و فرزن بیاره که مال خودش میشه اون موقع امه ولد میگرده خب تم کتابو به حمد الله و علیه. کتاب به حمد خدا و به کمک خداوند سبحان تمام شد. پس <تصفح> به فضل لواری بری تعالی این کتاب ارزشمند در مذهب امام بزرگوار امام شافعی رحمت الله علیه تمام شد و توضیحاتی که هم بسیاری از جاها ذکر شد اصلا اکثر جاها جز خیلی موارد نادر توضیحات طبقه مذهب امام شافعی بود از بیشترین شرهایی که بنده در این مورد استفاده کردن از فی ادلت متن الغایت و تقریب مصطفى دیب البغا هست فتح الغریب المجیب هست النهایه هست. الیقناهی حل الفاضل بیش جاهز کفايت الاخيار. اینا کتابای بودن که من بیشتر در حل عباره ها استفاده میکردم. نه در توضیحات اضافی بلکه در حل عباره ها و مختصر توضیحاتی که داده شد. امروز هم یک شنبه 28 آذر 1400 هست که این کتاب به فضل و, و آن سبحان تمام شد یکم 14 جمادی الاول 1402 43 است موفق و پیروز باشید